شب وصل است و تی شد نامه حجر سلامون فیه حتی مطلع الفج دلا در آشغی ثابت قدم باش که در این ره نباشد کار بی عجر من از رندی نخواهم کرد توبه ولو آزی تنی بالحجر والحجر برای صبح روشند دل خدا را که بس تاریخ میبینم شبه عجر دلم رفت و ندیدم روی دلدار فغان از این تتاول آه از این زجر وفا خواهی جفا کش باش حافظ فعن ربح و الخسران فدهش